به وقت گل شدم از توبه شراب خجل که کس ما ذکردار ناسباب خجل صلاح ما همه دام رهست و منزین بحث نیمز شاهد و ساغی به هیچ باب خجل و بعد که یار نرنجد زما به خلق کریم که از سوال ملولیم و از جواب خجل زخون که رفت شب دوش از سراچه ی چشم شدیم در نظر رهروان خواب خجل رواست نرگس مستر فکن سر در پیش که شد زشیوه ی آن چشم پر اطاب خجل تویی که خوب تری زافتاب و شکر خدا که نیستم ز تو در روی آفتا خجل هجاب ظلمت از آن بست آب خیز که گشت ز شعر حافظ و آن طب همچو آب خجل